اقلن بیست و چند طرح تا اونجا که من اطلاع دارم استاد از این چاکر صدیق باقی گذاشته و او را در حال قذب، استراب، ترس، دست و بیحالی نشان داده است. در یکی از این طرحها آقا رجب خابیده و وز تنو و بازوها و لنگ درازش با چند خط نمایان است. قیافه آرام و غیر قابل نفوز به نظر می رسد. استاد سعی کرده که باطن او را نشان بدهد اما چیزی دستگیر تماشا کننده نمی شود. فقط آنچه حوویده است، اثرات درد یک گذشته پرمشقت است. دوست پرده آبرنگ یا روحن نی از آقا رجب در موزه مدرسه نقاشی به نام استاد باقی است و خود او هم هنوز در این مدرسه کتاب حال دیدم چندین بار اسم موز کرده اگرچه ظاهرم فراش است و حقوق فراشی میگیرد اما در واقع بزرگتر و همه کاره است، به طوری که من جرات ندارم بدون اجازه او تابلوها را جابجا جا کنم. آها حرف نمیزند، از گذشته استاد هیچ یادش نیست، حتی وقایه مهمی را که همه میدانند به زور به یاد میآورد. آورد. میگوید، استاد فقط یک بار حاضر شد که تصویری از یکی از رجال بکشد و آن رجل خیل تاش بود که در بحبه قدرت و کبکبه، از مسافرت فرنگستان به ایران برگشته بود در آن دوران اغلب مردم از او بیش از شاه حساب می بردند و واقعا او را دیکتاتور ایران میدانستند روزی موقعی که خیلتاش در پاریس بود عکسی از او در ایلوستراسیون دیده شد خیلتاش در از های قصر الیزه پایین میآید میگویند وقتی استاد این عکس را دید خوشش آمد و گفت به اندازه یک سرگردن از اربابش بزرگتر است. کاش بتواند آبروی ایران را حفظ کند. من این عکس را در الستوراسیون دیدم. خیطاش با سینه پهن و سر بلند در حالی که هیچ چیز ساختگی در حرکاتش دیده نمی شود دارد با وقار و عبوحد مانند اینکه موفقیت بزرگی نصیب شده از پله ها پایین می آید. وقتی خیلتاش به ایران آمد استاد در حضور دوستانش ابراز تمایل کرد که صورت وزیر را بسازد چند روز بعد حضرت اشرف خودشان بیخبر به خانه استاد آمدند نیم به تماشای کارهای استاد پرداختند و بعد فرمودند جنیدم شما شاگرد استفانیای ایتالیایی بوده اید او را در سفر اخیر در پاریس دیده با خودش هم آشنا شدم او به من گفت که شما شاگردش بودید من هیچ شباهتی و یا اقلن تأثیری از اکل او در کارهای شما نمی بینم استاد گفت چطور می خواهید کارهای ناچیز مرا را با آثار استفان و مقایسه کنید؟ من یک از شاگردان او بودم طبیعی است که اثرات تعلیمات او در کارهای من هویدا نیست با وجود این من سعی می کنم که پیرو مکتب او باشم خیتاش لبخندی زد و گفت شما همانقدر مادست نباشید از چند روز بعد خیلتاش هفته دو سه ساعت هر وقت فرصت می کرد مخصوصا وسط روز می آمد و کتابی در دست می گرفت و می خاند و استاد صورت و... او را می کشید. پس از دو سه هفته روز پنجم و ششم خیلتاش هنگامی که روی صندلی راحت نشسته بود و کتاب می و استاد داشت با آب آبرنگ کار میکرد رویش را رو از کتاب برگرداند و گفت علا حضرت همایونی به کار شما بسیار علاقمند هستند. استاد چشمش را از تخته که در دست داشت بلند کرد و بیخیال گفت تشکر میکنم. کنم. مدتی شاید یک دقیقه تمام. به ساعت استاد خیره نگاه کرد. البته میدانست که این گفته او تاثیر خوشی در نقاش داشته است. اما وقتی که دید در قیافه استاد هیچ اکسان عملی مشهود نیست شاید تشکر می کنم را هم فکر نکرده گفته سرعتش سرخ شد و خون توی چشمهایش دوید. مسلم است که خیتاش منتظر تملق برای جنب و ریا از جانب استاد نبود، اما دیگر توقع این بیعتنایی را هم نداشت. خیتاش منتظر شد تا نقاش به اون نگاه کند و همین که استاد قدم‌هایش را به رنگ آبشته کرد و میخواست روی پرده بکشد، نگاهش به صورت وزیر افتاد و از قیز و غضب او تعجب کرد. تا همین لحظه خیلتاش پرسید میل نداشتی تصویری از اعلی حضرت همایونی بکشید رنگ صورت استاد پرید در مثل گچ سفید شد خنده دروغینی کرد قلم‌ها رو, رو روی میز گذاشت تخت شاسی از روی شست درآورد، رو از پشت تابلو آمد این طرف و گفت نه خیر قربان من تصویر کسانی را که میل دارم میکشم این های دور بر خودتان را تماشا کنید اینها را من دوست دارم چشم های حضرت اشرف پر از خون شد نگاهی به های اطراف انداخت دهان باز مارگیری که میخواهد سر مار را گاز بگیرد تنفر او را برانگیخت استاد داشت از جا در میرفت اما خیتاش که مرد مسلطتری بود از روی صندلی برخاست دستی روی شانه او زد و گفت من برای شما احترام قائدم و از شما را هم میفهمم چه احترامی؟ خیلتاش دوید توی حرف استاد سخت نگیرید مرحمت شما زیاد استاد مدتی در اتاق تنها بود نیم ساعت بعد که نوکش وارد اتاق شد دید روی چارپای کنار پنجره نشسته سرش رو در هر دو دستش گرفته آرنج رو روی درگاه گذاشته و دارد خیره به آسمان نگاه میکند وقتی آقا رجب را دید به خود آمد از روی چار بلند شد با کاردی که با آن رنگ روغن را میتراشید پرده خیتاش را جر داد و چارچوب را از کتان در آورد و پالتواش را تن کرد و از خانه بیرون رفت آقا رجب یادش است که استاد روزی نامهی به او داد و آن را به وزارت خانه برد و پیش خدمت اتاق حضرت اشرف, و پیش خدمت اتاق حضرت اشرف تسلیم کرد و دیگر خیلتاش را در خانه استاد ندید چند روز بعد همان پیش خدمت مخصوص اتاق حضرت اشرف نامه آورد که با آقا داد من این نامه خیلتاش را میان اوراق استاد پیدا کردم اینک عین نامه استاد گرامی، متاسفم که تصویر من را ناتمام گذاشتید امیدوارم هر وقت فرصت کردید به اتمام همت گمارید ارادتمند خیلتاش با وجود این خیطاش همیشه در حضور جمع احترامات و استاد را مراعات میکرد در همان ایام یکی از دانشمندان به نام هند به ایران آمده بود در تالال وزارت فرهنگ که گنجویش دیویست تا دیویست و نفر آدم را داشت مجلسی به افتخار او ترتیب داده بودند در دو صفحه اول سردمدارها نشسته بودند همه وزیران و جمعی از وکیلان و قاب چینها حاضر بودند در صفحه پنجم استاد دیده میشد سه دقیقه قبل از ورود دانشمند هندی خیلتاش ورد تالار شد. فوری آنهایی که در دو سردی نشسته بودند از جا برخواستند. خیلتاش بی به همه کس جای خود را پیدا کرد و نشست. همه نشستند. بعد متوجه نخست وزیر که دو آن طرفتر نشسته بود گردید. همین که بلند شد پیش نخص برود چشمش به استاد افتاد گفت سلام عرض کردم. نقاش متوجه نشد. دونست هم با بلند گفتند جما به استاد حضرت اشرف اظهار لطف فرمودند استاد نیمخیز شد سری تکان داد بدون اینکه در قیافش الانمی از شادی یا خوشنودی دیده شود خیتاش گفت گفت کنم میکنم اصدآ میکنم وقتی حوادث زندگی استاد را حلقه حلقه به هم بزن جیر میکنیم میبینیم که سری در زندگیش نهفته است این حوادث پیوسته و یک دست نیستند با وجود این پیدا است که رشته اصرانویزی از میان همه آنها میگذرد و تا این رشته کش نشود نمی تواند حلقه را ها را به هم پیوند داد